نردبان جاودان وصل مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی اهمیت و آداب زیارت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد محمد و على آل الطيبين الطاهرين لَا لا سيما بقيه الله في الارضين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل قُولِ من لساني إِلَّا قولي وما توفيقي وَعَلَيْهِ بالله عليه توكلت و اليه اللهم ارنا الحق حقا فنتبه و الباطل باطلا فنجتنبه اینکه علا کل شیئن قدیر و رحمتی که یا ارحمال اما بحث امروز ما تغییر میکنه علتشم اینه که فردا تقریبا یک اتوبوس از دوستان حسینی و آزم کربلا هستن و قرار شد که راجب زیارت صحبت کنیم و نوانم بعضی از دوستانی که آزم عمره میشن یا آزم اتباط آلیاتن یا آزم مشهد مقدسن هی hey, مراجعه می کردن که مثلا راجب زیارت و زیارت بهتر و هدف زیارت و اینها با ما صحبت بکنی. ما قبلا جلساتی داشتیم هایی شده بود حتی در یک زمانی سه جلسه راجب بحث زیارت بحث کردیم ولی قرار شد که این جلسه رو دیگه ما مجددن راجب این بحث با هم داشته باشیم و اما در رابطه با زیارت خب ما یه بحثی داریم به ویژه در فرهنگ شیعی البته در اهل سنت هم غیر از وحابیون بقیه فرق اهل سنت هم در اصل این مسئله با ما شیعیان متفقند حالا شدت و ضعفش نه فرق میکنه. لذا اکثریت اهل سنت منهای وحابیون زیارت میرن اره عدب میکنن شما اگر الان در مصر برید در شهر قاهره در میدان اصلی شهر قاهره رسل حسین بارگاه بسیار مفصلی است که میگن بعضیا که سر مقدس ی عبدالله حسین رو بردن اونجا دفن کردن حالا قضیه تاریخیش کاری ندارم که این سند داره نداره چی شده اما منظورم اینه شما الان اگر هر وقت شبان روز که بازه وارد اون بارگاه رسول خسین بشید جمعیت اهل سنت قاهره اونجا پرن زیارت میکنن گریه میکنن توسل میجوین حتی مثلا از سهن میخوان بیان تو خیابون نه از داخل اون ازایی که عنوان حرمه از سحن میخوان بیان تو خیابون اینجور به پشت حرکت میکنن که رو به طرف اون مقام رسول حسین باشن اینو از تو خود مصر مثلا یا جه دیگه فرابان اصل بحث زیارت منهای بحث وحابی ها که یه انگیزه خاص سیاسی بود و میخواستن عظمت این اماکن مذهبی رو زیر سؤال ببرن که ما تو بحث‌های وحابیت نقد کردیم، سیدیش هست، کتابش هم انشالله در میاد، دوستان میگیرن اونجا بحث شده. من اجازه بدید اصلا وارد اون مقوله نشم. فعلا در همین حد که اصل بحث زیارت بحثی نیست که آدم بتونه با توجه به منابع دینی ما مسلمین ازش به راحتی بگذره. اما زیارت یک عملی است که از ما انسان‌ها سر می‌زنه ارزش عمل به پشتوانه معرفتی اونه ممکنه دو نفر با هم یک عملی رو انجام بدن اما از یکی به جهت معرفت خاص و سطح برتر معرفت اون عمل به مراتب ارزندتر حساب بشه از یکی دیگر که ظاهر عمل با او فرقی نکرده به همون شکل عمل رو انجام داده اما در سطح معرفت اون دیگری نبوده اصلا قابل مقایسه با اون دیگری نباشه این در همه امور میتونه جاری باشه ولی در مباحث معنوی و دینی بیشتر حالا در همه امور عرض کردم میگه یک نمونه عرض کنم خیلی ساده الان یه مزرعه رو به من و شما میدم میگن اینجا گل پرورش بدید یا یه درخت میبر رو پرورش بدید ما مشغول کار میشیم یکی بلد است میداند آگاه چگونه کار کنه اولی هم داره آبیاری میکنه دومی هم آبیاری میکنه اولی شخ میکنه دومی هم شخ میکنه اولی کود میدسم پاشی میکنه دومی هم کود میدسم پاشی میکنه ولی اولی آلمانی این کارو میکنه میدونه چجوری باز شخ کنه. چه موقع باد آب بده، چه مقدار باد آب بده، چه موقع سپاشید کنه چه موقع کود بده چه مقدار کود بده با اون دیگری قابل مقایسه نیست. حتی در مسائل غیر معنبی حرفا مطرح میشه، اما در مسائل معنبی یه حساب دیگه ای داره، کاا اون حساب دیگه شو با هم میخوایم بحث کنیم. مثلا شما در روایات محصومی علیه السلام دارید که، اگر کسی درعت نماز با معرفت بخواند نسبت به کسی که درکت نماز خونده ولی معرفت اولی رو نداشته این اولی هزار برابر دومی عجر داره این اینا یعنی چی؟ یعنی چی باید داشته باشه و این عجر بالاتر است بازی یعنی چی؟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 اصل زیارت در لغت ملاقات کردن دیدار داشتن شما الان به زبان عربی مثلا میگید که رفتید خونه فلانی رو ببینید برگشتید میگیم کجا بودید میگیم رفتم به زیارت فلانی تو زبان عربی میتونید اینجوری بگید رفته بودم زیارت فلانی یعنی زیارت فلانی مثل که تو فارسی شما میگید رفتم دیدن فلانی من تو کوچه شما رو میبینم میگم کجا بودید میفرمایید فرمایید که رفتم دیدن فلانی این دیدن رو به عربی برگردونیم میشه زیارت رفتم زیارت فلانی خب ما دیدن زنده ها به من یه ظاهری میرم دیدن فلانی خب این دیدن رو برای چی میرم؟ برای چی میرم یه وقت هست میگم دلم گرفته خسته شدم هیچ کار دیگه یه هم ندارم میگم خب بریم یه چند دیگه آنجا بشینیم گهده کنیم حرف بزنیم یه چای بخوریم پس پشتوانه دیدار من از فلانی رفع خستگی خودمه گرده کردن و حرف زدن و یه چای خوردن و یه چند لحظه مثلا وقتم اینجوری پر کردن خب حالا همین کار در یه حالت عادی ممکنه بگیم خب اشکالی داره؟ نه من خسته شدم دیدم فلانی هم اینجا تو خونه شونه. الانم این وقت به من میده پاشم برم یه دقیقه دیدن ایشون پاهم بشینیم حرفی بزنیم چای بخوریم گرده کنیم چرتو تا جوک بگیم بخندیم خستگیمون را اخوش ولی اگر این فلانی یک چهره علمی معنوی اخلاقی ارفانی در سطح بسیار بالایی باشه که شما یه نیم ساعتی یه ساعتی رفتید پیشی فلانی می توانستید اطلاعات بسیاری به دست بیارید شناخت علمی خوبی پیدا کنید سوالاتی تر کنید به شما جواب بسیار قشنگی بده تجربیات زندگیشو از او بپرسید یادداشت کنید بعد تو زندگیتون پیاده کنید به جای همه این افعال که چقدر میتونست تو زندگی شما تأثیر بگذاره فقط نشستید در محضر این مرد خدا جو گفتید و خندید و دو چای خوردید و یه مقداری شوخی کردید و بعد اومدید رفتید بعدم من به شما بگم حیف نبود همچه فرصتی از دست دادی آخه چرا بگی خلابشر کردم بگم نه نه خلابشر نکردی کار من بر خلاف معیار قرآن و روایات بود از نظر ظاهر نه پس چه میگی؟ میگم از نظر حرام و حلال اگر بگید شما خلاف شهر عمل نکردی ولی از نظر مندی که یک مؤمن باید از هر فرصتی استفاده بجا بکنه شما وقتان بنده خدا رو زایه کردی وقت خودتان به جای اینکه که بگی به خندی سوال میکردی به جای اینکه فقط وقت تو سر چای بکنی یه معذلی رو طرح کردی یه راهنمایی می‌گرفتی. یه از اون که تجربیاتون چیه؟ اطلاعاتون در رابطه با فلان مسئله چی؟ این بهتر نبود؟ پس یه زیارت معمولی، یعنی دیدار همین عالم ما وقتی به دیدار افراد می‌ریم، حالا مثال توی محدوده دیگه بیارم. بازم تو همین محدوده های معمولی دنیابی ما. مثلا فنده فرزوری الان در رابطه با شخص خودم بگم. خب من این صرفه عذیتم می‌کنه. حالا رفتم در محض دیدار کسی زیارت دیدار کسی یا نمیدانم یا میدانم تو هر دو فرز یک نمیدانم این فرد اولین متخصص کره زمین است در مداوای همچو صرفه هایی حالا به منم گفته در خونش اش بازه میگه بفرمایید منم میگم فعلا بیکارم خب چای دارید آقا میگه بله چای دارم میگم هوا گرمه شربت چی میگه شربت هم بهت میدم میگم میوه‌م دارید میگه هرچی تو خونه هست میارن بفرمایید حالا من نشستم میگم چایتون کو بعد شربتتون کو میوه رو میخورم حال داری چهار تا براتون بگم چهار تا هم میگم اون آقا ممکنه بخنده سرش رو بذاره پای بندازه پایی بعد من از اتاق میام بیرون شما به من میرسید میگید میتونید اولین متخصص مداوای حنجره بود احساس میگی عجب فرصتی رو از دست دادن. من یه همچه ناراحتی دارم که این همه داره من اذیت میکنه منو تو اتاقش برد چایم داد میوهم هم داد هزیراییم هم کرد پس معلومه که منو قبول میکرده لط داشته یه گدا کاهل و بعد صاحب خانه چیست من عرضه نداشتم مشکلمو مطرح کنم من عرضه نداشتم مسئله صرفم در میان بذارم تا بتونم از اوی بحره ببرم اینجا من اگر بفهمم تأصف و تأثیر داره یا نه عجب فرصتی رو از دست دادم. حالا از این حساستر بدانم یه همچو فردیه فرض اول من نمی دونستم حالا که نمی دونستم خب در حدی اینکه چای داری میوه داری جوک بگم بخندیم فلانو مجلسه تموم شد و ولی در فرضی که میدانم این انسان یه همچه فردیه و خودم هم دارم میبینم که صرفه میکنم و اذیت میشم اما به جای اینکه بهش بگم که آقا چای نمیخوام این چایی که الان من برم خونه میتونم خودم دم کنم بخورم حالا میوهم بخورم نخورم مگه چی میشه مگه زندگی منم فقط جو گفتن و خندیدنه آقا به جای همه اینا شما بگو من چه کار کنم حنجرم خوب شه ببینید برخورد من با این آقا در دیدار ظاهری دنیوی به میزان معرفتی که قسمت به اون فرده و رابطه خودم با اون فرد دارم دیدارم تغییر میکنه یا نه؟ ما گفتیم دیدار زیارته دیگه من رفتم زیارت اون آقا نرفتم دیدن اون آقا کجا بودی از دیدن فلانی میان؟ خب چگونه دیدنی شد؟ دیدن من این شد که من برایش جگ گفتم و هم خندید دیدن من برای این شد که من تشنه بودم آب خواستم به من آب و شربت داد حالا این دیدار رو این زیارت رو بیاریم زیارتی که ما تو فرهنگ دینی داریم یعنی اولیای دین را یه وقت در حیاتشون مثلا زمان پیغمبر اسلام، شما فرض کنید از ایران را دادید رفتید مدینه پیغمبرتون رو ببینید از نزدیک رفتید به زیارت پیغمبر به دیدن پیغمبر زمان امیر المؤمنین کوفتش دارن من از ایران را افتادم رفتم کوفه این همه را رو کوبیدم این همه زحمات رو تقبل کردم حالا اونجا حضرت هم انایت دارن امامن لطف دارن منو پذیرفتن تو خونش هم راه دادن مثلا حالا من در محضر امام علیه السلام وارد شدم زمان حیات ظاهری امام چه برخوردی با امام دارم چی مطرح میکنم مثلا تا رسیدم به امیر آقا فلان همسایه خیلی اذیتم هم میکنه میشه شما یه نامه بدی ببرم اون همسایه. دیگه من اذیت نکنه من مشکلم فقط با امامم همینه از اینجا پاشدم رفتم کوفه امیر المؤمنینم رأس حکومت خلافت است، منم عنوان یه شیعش از اینجا پاشدم رفتم کوفه میگم آقا همسایم من اذیت میکنه شما یه نامه بدید ببرم یا مثلا آقا دلم میخواد خونم بزرگتر بشه دلم میخواد اتومبیلم رو تغییر بدم بیان من با امام تو این حده میشه مثلا آیا در اعتقاد ما برگردی با مثالی که ارز کردم اگه من وارد این در باز آقا تعرف کرد بیا تو من رفتم داخل میدانم است که میتونه کسالت منو مداوا کنه یا نمیدونم پرزی که در اینجا داریم ما وقتی داریم میریم عطبات عالیات، چه نجف، چه کربلا، چه کازمین، چه سامرا آیا باور داریم که امام زنده و مرده ندارد یا نداریم؟ اولین قدم اینه باور داریم که امام زنده و مرده نداره اگه باور نداریم اول باید رو باورمون کار کنیم خدا الحمدلله این همه ما باور داریم آقا نه امام اصلاً در فرهنگ دینی ما مرگ چیه جدایی روح از بدن جدایی روح از بدن میگن مرگ خب روح که از بدن جدا می شود نفس که از بدن جدا می شود زمانی که با بدن هست مثلا الان من و شما نفس میکشیم راه میریم سخن میگیم الان نفس من درک من تشخیص من بحث من سوال و جواب من همه اینا مربوطه به چیه به نفس منه دیگه اگه نفس نباشه که من بدنم یک لاشه جسدیه مثل بقیه اجسام این عالم حتی از یه جهت بدتر این فرش حالت طبیعی خودشو داره بدن من نفس نباشه ممکنه متعفن بشه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 مکاشفه نومیه مکاشفات نومیه که رؤیاهای صادقه است مگر آزادی نفس در خواب از عالم ماده و سیر در عالم معنا و کشف حقایق عالم معنا نیست لذا برخی از بزرگان بودند میگفتند معضلات فکری داریم معضلات علمی داریم غصت می کنیم. روزه میگیریم. نمازهای مستحبی می خونیم از کاری را زیر نظر اهل فن مداومت می کنیم تا در عالم خواب چون در عالم بیداری که من این ظرفیت ندارم در عالم خواب روهم بتواند این اجازه رو پیدا کند خدمت وزرگانی که این مشکلات رو حل کنند برسد و از اونها سوال بکنه مثلا بعضی عدیه داریم اگر این دعاها رو بخوانید با تهارت بخوابید چنین و چنان ممکنه خواب امام رو ببینید ممکنه خواب پیغمبر رو ببینید خواب ش... فلان شخصیت برجسته رو ببینید چرا میگن قبلش روزه بگیرید قبلش یه سری عبادت رو انجام بدید قبلش یه عاد از کاری رو مقید بشید؟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 حالا اگر کسانی قدرتی پیدا کنن که این مکاشفه رو تو بیداری داشته باشن اون که دیگه هیچی در یه سطح خیلی عالی است الان چیزی راجبش نمیگن خب اگر ما در حالت تهارت نفسانی قرار بگیریم ولو تو همین عالم ماده دو عالم ماده در عالم خواب رویاهای های صادقه میبینیم در عالم بیداری اگر رسیدیم با اون مقامات بالایی که تعالی نفس خیلی بالا باشه به تعبیری میگن چشم برزخی باز میشه بعضی با چشم برزخی شون چیزایی رو میبینن که بقیه نمیبینن با گوش برزخی شون چیزایی رو میشنون که بقیه نمیشنون خب حالا اگر مرگ جدائی نفس از بدنه است نفس آزاد میشه از این تعلق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 و در عالم قیامت که باز حساب دیگه ای داره نفس من در حجاب اعمال ظلمانی من گیر میافته آزادی نداره اما اگر من حالا امام و معصوم نه yeah. انسان عادی نفسم در این عالم زحمت کشیده باشه یه تعالی نفسانی پیدا کرده باشه حالا که نفس از بدن جدا شد به اندازه اون تعالی که داره خیلی حقایق رو میتونه بیاد به ما بگه لذا بعضی وقتا افراد مرده رو در خواب میبینن خبرهایی رو میاد میده عجیب و غریب خیلی عجیب و غریب که اجمالا میگم رویای صادقه تو بادیه علمیان و خواب شاگرداشون مشکلات علمیشون رو حل میکنن تو وادی مسائل مثلا اخلاقی اجتماعی میان بخواب یا نه تو تو وادی های معملی بنده یه جلسه توی شهرستانی دارم هر چند وقت یه بار میرم یه سری میزنم یه بحثی میکنم میام همین هفته قبل که تعطیل بود برای منظور رفتم. و یکی از بستگان دور من خبر نداشت از این قضیه. به من زنگ زد گفت خواب دیدم اون خونه ای که ما تو اون خونه میرفتیم و این جلسات بحث می کمی هفته گذشته من اونجا بودم، گفت خواب دیدم مادر اون آقا رو که از دنیا رفته برگشت گفت من تا زنده بودم چقدر دلم میخواست که این جلسات اینجا دایر بشه ولی من تا زنده بودم نشد خوشحالم که حالا بعد از مرگ من این جلسه دایر شده از من پرسیدن جلسه چیه؟ خب ببینید این فرد سالها مرده رفته حالا خونه پسرش یه جلسه دینی تشکیل شده اون میاد به خواب یکی دیگه کسا خبر نداره بعد میگه که خوشحالم که این جلسه تشکیل شده ولی من تا زنده بودم دلم خواست که تشکیل بشه خب مرگ چیه جدایی نفس از بدن که خب نفس که این سیتره رو داره حالا اگر نفس نفس امام باشد نفس پیغمبر باشه و نفس امام و پیغمبر که شهید در راه خدا باشه وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُو فی سبيل الله اَمْوَا بله احیا اون اندرم اینا مرده نیستن اینا زنده خب اگر این معنا برای من جانه افتاده چرا در ازن دخول میگم اشهد و نکرد؟ تسمع و کلامی و تشهد و مقامی من شهادت میدم تو میشنوی من چی میگم من شهادت میدم تو موقعیت منو در میابی می میدونی من کیم که الان اینجا باستادم دارم اجازه میگیرم بیام داخل این حرم زیارتت کنم اجازه به من میدی یا نه شهادت میدم جواب میدی بله جواب میدن ولی کی میشنوه به خدا قسم بودن کسانی که وقتی سلام میدادن از سلام علیکه یا ابا عبدالله جواب میشنیدنده اونا جواب میدن اون قضیهی که میره فندرسکی راجبه موجز... میره داماد راجبه معجزه پیغمبر نقمی کنه یادتون بیاد میره داماد میگه معجزه پیغمبری نبود سنگریزه تو دستش به زبان آمد گفت اشهد انک رسول الله ولی که معجزه پیغمبری این بود که گوشها را شنوا کرد سنگریزه الانم داره میگه الانم هر سنگ ریزهی در هر گوشه ی عالم در واقع داره فریاد میزنه اشهد و نکر رسول الله به پیغمبر اسلام ولی کدوم گوش میشنوه. لذا شما تو ازم دخول به امام میگید شهادت میدم که میشنبی من چی میگم موقعیت منو میدونی جواب منو میدی خب اگر با این شناخت داریم میریم زیارت یعنی میریم دیدار با توضیح ارز کرده دیدار کی؟ حالا رو این کی اول یه کمی مکس کنیم در بحث قرآنی و در بحث تفسیری ما مخصوصاً شیعان مقامی که برای پیغمبر و امام ذکر میشه که از اون مقام بالاتر ما دیگه کلمه ای نداریم خلیفت الله اینی جایلون فلعرزه خلیفه وقتی یه جلسه قرار من این بحثو بکنم نمیتونم طول بدم وگرنه اینا خیلی باد بحث بشه انی جائلن فل ارزه خلیفه خدا آسمان و زمین و طبیعت و خلق کرده نبات و حیوان و خلق کرده زمین مستقر شده اجنه آفریده شده اند فرشتگان آفریده شده اند ولی میگه یک موجودی میخوام بیافرینم که او با بقیه فرق داره انسان اینو با چی بیان میکنه؟ میگه نیجا ایلون فلعرز خلیفه میخوام خلیفه بیافر هم. یعنی موجودی که توان داره به مقام خلافت الهی برسه که اولین خلیفه های پروردگار انبیایند و امه اطهار علیه السلام و به نسبتی که تبعیت از اونها میکنن به اون نسبت مقام خلیفت اللهی پیدا می خب مقام خلیفت الله یعنی چی؟ روش مکس کنیم یکمی یعنی من الان وقتی میخوام وارد حرم امیر بشم میگم اومدم زیارت یعنی چی اومدم دیدن دیدن کی؟ دیدن کسی که قرآن میگه خلیفت الله هست روایت میگه خلیفت الله. خب خلیفت الله یعنی چی؟ آقا شما میگید که یه مغازه سوپری سر کوچه ماست ایشون یه فروشنده خیلی دقیق و خیلی با توجهه اولا حرام و حلال سرش خیلی میشه همیشه در فروش تو ترازو سعی میکنه یه کمی جنس و سنگین تر به مردم بده مدیون نباشه احترام و مشتری رو نگه میداره ها رو رایت میکنه خیلی در حد یه فروشگاه یه سوپر هر وقتی هم که خودش نیست کسی را جای خودش گذاشته که مثل خودش همین اهداف رو پیاده کنه اینجا میتونید بگید که این فروشندهی که جای اون سوپری قرار گرفته خلیفه سوپریه خلیفه سوپریه در چی؟ در اداره سوپر خب اگر این سوپری دقیق است توانم دارد کسی را جای خودش بگذارد که دقت خودش رو داشته باشه و این کار را نکند نمیگیم خلافه خب توان داره کسی را میشناسه که میتونه جای خودش این کار انجام بده خب پس او رو میاره جای خودش میذاره در حدیه سوپری حالا یه بیمارستان بگیرید بحثو ببرم بالاتر. آقا یک بیمارستانیست مثلا حساس هم هست مثل قلب که یک کمی بی دقیقتی ممکنه انسانو با کشتن بده یا م الان میخواد جمجمه یک انسانی رو عمل جراحی بکنه. میخواد قلب یه انسانی رو در بیاره قلب دیگه جاش بگذاره. میگیم آدم دقیقی ماهری وارد خیلی خوبه ولی قرار 5 ماه بره مسافرت، فکری کرده کسی رو جای خودش بگذاره میگیم بله، فلانی رو جای خودش گذاشته و او به ما گفته که همین کاری که من میخوام بکنم این میکنه. رضا میگن خلیفه اون پزشک و بیمارستان. خب خلیفه خدا در زمین یعنی چی؟ انی فل فلعرز خلیفه خلیفه من در زمین یه نکته قرآنی فقط با اشاره رد میشم که اگه دوستان به ذهنشون سوال اومد رو دقت کنن نه یعنی خلیفه خدا برای زمین برای جای دیگه نه خلیفه خدایی که در زمین قرار گرفته وگرنه خلیفه خداست برای کل هستی لذا امیر المومنین فرمودن که انا به تراق سما اعرف من ترقل ارض سلوني قبلا تفقدوني این بحثش خداست حالا کاری ندارم فقط میخوام اینو بگم خلیفه خداس یعنی چی یعنی کاری را که خدا میخواهد در زمین که جایگاه انسان است برای انسان انجام بده این موجود به اذن الله اون کارو میکنه معنی خلیفه الله یعنی و خادم کجا داره میره آقا تو کوچه یا حسینیه یا حاجیان دارم عبور میکنم در خونه باز طرف میگه بفرمایید. من نمیشه سمین کیه داره میگه بفرما ازا ممکنه با یه بیخیالی بگم حالشو ندارم وقت ندارم یا میگم باشه میام چای داری بیام پس من او رو در حد یه چای شناختم میوه حاضر داری حالا که تعرف میکنی بیام یه میوه بخورم یا دروبای کرده میگم شما که منو تعارف میکنی حالش داری بیم یه کمی با هم جک بگیم بخندیم اما یه طرف میگه میدونی کیه میگه بیا اینو بر جستگان عالم منتظرن وقت میده که برن دو دقیقه پیشش بشینن سآلاتشونو بپرسن آقا به زیارت کی داریم میریم خلیفه الله یه قضیه برای تعریف کنم برگردم مرحوم حجمیرزلی آقای شیرازی رزوان الله تعالی علی آقا کیا بودن کیا بودن یکی از عزیزان تو این هفته الان اینجا هستن با من زنگ زدن راجب به یه موضوعی چه کنیم گفتم نمیگم نیستن ولی مخفی شدن و راضی هم نیستن کسی اینا رو معرفی کنه یه زمانی بود اینا در دسترس بودن مرحوم حاج آقای شیرازی کسی است که مرحوم استاد مطهری با اون سیطره ای که تو مباحث دینی داشت فرما... کتابی ازشون چاپ شده سید در نهج البلاغه اگه نخوندید حتما بخونید در این کتاب سید در نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری نقد میکنن من حوزه قم درس میخوندم یکی از هم مباحثه های ما که اصفهانی بود چون مرحوم حاج میرزا آقای شیرازی اصالتا شیرازی بودن ساکن اصفهان بودن به من فرمودن که تابستول وقت تو بزار بریم صفان پای درس نهجل بلاقه حاج میزری آقا بشینیم. و من اول به ذهنم گذاشت تو مقدمه ای سری در نجل واقغست بکنیم. میگن تو ذهن من گذشت که ما که تو حوزه داریم درس فکر میکنیم اصول میکنیم این درس ها رو میخوریم حالا نجل بلاقه چی میخواد یه فردی بگه که مثلا برای ما وقت گفتم خب ال های گشتی به اون شهر میزیم یه جلسه میریب و رفتم پای درس آج میزری آقا دیدم او اصلا نجل بلاقه یعنی چی؟ بعد وقتی میخوان اسم این استاد رو ببرند دو سطر لقب ذکر میکنن بعد اسم می برن حجمزلی آقای شیرازی. این آجمزلی آقا یکی از دوستان من که خدا او را بیامرزد گفت من از من خیلی بزرگتر بود ما با هم دا و قوتم خونده بودیم. اون مرد برای من نقل کرد یه سفری با آجمی زلی آقای شیرازی و عدده از قلم های معروف اصفهان رفتیم کربلا ولا. مال پ سال قبل وقتی رفتیم کربلا تو صحن امام حسین اونا همه از علمای برجسته بودن این آقا گفت منم هم همراشون بودم تو سن این علما با هم بحثشون شد که با چه زیارتی ما امروز امام حسین رو زیارت کنیم امین الله بخونیم جامعه کبیره بخونیم زیارت مخصوص حضرت رو بخونیم چه بخونیم همون‌طورشیم صحبت می کردیم یک ظاهرا معلوم شد از لحجه و صحبت که یک روستایی بود اومد از کنار ما ردشه دیدی تو صحن ما حسین پشت به قبل لباسید ذریع پیداست از تو ایون گفت ما رو به روی ذریع واستاده بودیم پشت به قبله رو به ذریع داشتیم نگاه می کردیم همین جور که داشتیم با هم حرف می زدیم این آقا اومد رد بشه یه نگاهی به ذریح کرد گفت از سلام مععل یا همه کاری دستگاه خدا و رحمت الله و برکات گفت تا اینو گفت از میزری اقا قش کرد بیهوش شد افتاد ما اج میزری آقا رو به هوش آوردیم. وقتی به حال اومد گفت خدا اینو فرستاد به من یاد بده که داری میری زیارت کی از سلام و یا همه کاری دستگاه خدا این ملی خلیفه الله بله همه کاری دستگاه خدا عزیز من این شرک نیست بدبخت وخوابی که آلت دست استعمار شده ما مسلمونا رو از این سرمایه ها جدا کنه شرک خدا خودش میگه نیجا ایلون فل عرض خلیفه من این قدرت رو بهش دادم من این اجازه رو دادم من اون رو گذاشتم به ازن من این کار رو بکنه لذا شما راجب امام میگید ید الله این الله لسان الله، اینالله الله، عین الله. همه کاره دستگاه خدا خب زیارت یعنی رفتن دیدن یه همچون موجودی خب حالا به دیدن همچون موجودی بریم این یه فعلیست اولین معرفت به دیدن کی میرم چه لغتی چه تعبیری چه عنوانی از این بالاتر که همه کاره دستگاه خداست خلیفت الله یعنی این دیگه همه کاره دستگاه خدا خدا به او قدرتی داده خدا به او توانی داده خدا به او اجازه ای داده که تعبیر دیگرش بگم چه می کند ولایت تکبینی دارد؟ نه تنها ولایت تشریفی ولایت تشریفی خیلی مهم نیست گرچه مهمه ولی ولایت تکبینی یعنی چی؟ یعنی کائنات در اختیار اونهاست همین جذبه اجازه بدید بارد یه بحثی دیگه بشم ببینید شما الان در نظام این عالمی که ما قرار گرفتیم نظام تعلیم، تعلم، معلم، تدریس، درس، آگاهوندن چقدر برای ما مهمه؟ چقدر مهمه؟ اونقدر مهمه که امام حسین علیه السلام برای اینکه به ما یاد بده به معلم فرزندشون که حمد رو به یاد داد، دهنشو پر از طلا کرد. طبق توضیحاتی که برای ما دادن یعنی چی؟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 خوب پرورش بده بیشتر از این میتونه مثلا شما یه آقا رو میگید که استعداد اولین ریاضیدان کل زمین شدن را دارد میگیم این معلم ارزه داره پرورشش بده زایش نکنه اگه معلم خوبی باشه این آقا رو که همچه استعدادی داره نحوهی با او کار میکنه که استعدادش بشه چی؟ استعدادش فعلیت در بیاد بشه یک مثلا ریاضیدان دقیق این آغازات استعدادی داره میتونه قوی ترین جراح کره زمین بشه آقا استعداد رو بروز بدید خب حالا کسی که استعداد ریاضیدان شدن را ندارد به مربی بدی چی میگه؟ میگه ایجاد استعداد که کار من نیست بروز استعداد کار منه درسته همه بشر کره زمین اون قبول دارن یا نه؟ مربی معلم قوی ترین معلم قوی ترین مربی میگه بروز استعداد کار منه اگه بتونم تازه ولی ایجاد استعداد که کار من نیست اما کسی که ولایت تکبینی دارد میتونه وجود را عوض کند یعنی ایجاد استعداد کنه ما داریم زیارت رو باید کلاس تربیت ببینیم مربی مربیکی خلیفت الله شاگرد کیه ما که داریم میریم به زیارت هدف کیه چرتکه بندازم چند بار زیارت کردم چقدر تو حرم موندم زیارت جامعه رو چند بار خوندم زیارت امین الله رو چند بار خوندم شب اول قبر امام حسین ملائکه بفرسه کمکم کنن بهشتم منو به برای کاخ بهتر بدم اینا نمیگم نیست ولی بالاتر از اینا نیست مثل اینه که دم و در باز شده داره به من میگه خسته ای بیا تو میگم چلو کباب داری بیا خب چلو کباب به من بده دیدی من رفتم چلو کباب خوردم. میگه خب حالا تو میتونستی دردتو درمان کنی به جایی چلو کباب خورده هم دردت درمان میشد بهتر نبود خب داریم پیشی کی میریم کسی که خلیفت الله خلیفت اللهی که به ازن الله وجود خلق الله را دگرگون میکند بی خود نیست که مرحوم آیت الله. اسفحانی کمپانی معروف در اون شعر مشهورش با اون عظمت علمی که داره استاد همه مراجع و همه عرفا و فقها و فلاسفه زمان خودشه این مرد این مقام و عظمت وقتی برای حضرت زهرا میخواد شعر بگه بنچه فکر بکر من لب سخن سخنجوا کند از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند میرسه به آخرین بیتش مفتقر آمد آبرون از در او به هیچ سوی زان که مثل وجود را فضه او طلا کند زان که مثل وجود را فضه او طلا کند او که شهنش اجل همین مرحوم حاجی آقای شیرازی اون مرد خدا برای من تعریف کرد گفت من همراه حاج میرزعلی آقای شیرازی بودم تو کربلا ولی حالا حالش چی بود بعد عرض می گفت ایشون فرمودن که من بعضی حاجت‌ها را خجالت میکشم از امام حسین بخوام خیلی کوچیکه امام حسین بالاتر از اینه من از در حاجی میرزعلی آقای شیرازی هم. من از در حسینیه اصفهانی های کربلا میخوام این حاجت رو به من بده در حسینیه اینا چی فهمیده بودن آقایون خانوما یعنی خلیفت اللهی است که به اذن الله برای خلق الله میتونه هر کاری رو انجام بده ولی حالا کیو بپسندن کیو نفسندن یه بزرگی بود من حق استادی به گردن من داشت یه بار خصوصی به من گفت با من یه سفری از قم رفتم مشهد از راه که رسیدم خیلی خسته بودم دیدم حال حرم رفتن ندارم نرفتم حرم امام شب شب استراحت کردم سهر برم استراحت کردم سهر آماده شدم برم برای حرم تو راه به یکی برخوردم منو رو دیپا اجام شما که اومدی؟ گفتم دیشب مشرف شدم خب من دیشب امام رضا رو خواب دیدم فرمود من دیشب تالا منتظرم فلانی بیاد هرم گفتدم تو سرم از یه طرف امام چقدر لطف داره میگه منتظرم فلانی بیاد یعنی بعضی رو اینجور میخوان از طرف دیگر به من فهمون که شما که وارد شدی ای کاش با همون خستگی هم میرفتی مثلا حالا تینا آدابی دار اگه شد عرض میکنم پس ما به دیدن کی می‌ریم؟ خلیفت الله توان خلیفت الله دستو بالا بگیرید تغییر موجودیت ما تغییر وجود ما استعداد ما را دگرگون کردن که خود این اصلا قابل مقایسه با چیزای دیگه نیست اما حالا که ما میتونیم از اینا که همه کارا ازشون برمیاد دیدن رو مقدمه یک کلاس تحول وجودی قرار بدیم معرفت در خواستن و محضر اینها رسیدن یه خاطر از خودم بگم چون نقص منه میگم امتیاز نیست حدودی 27 سال 29 سال بیشتر نبود مشهد مشرف شدم شب جمعه بود بالا سر حرم امام رضا علیه السلام حالم منقلب شد خب جوانی بود و پاکی اون جوانی بود و حال و هوایی که تو اون سننا بود که ای کاش اون حال و هواها باقی بمانه. ما من قلب منقلب شد دلم شکست یه توسلی جستم تو همون حال یه ای داشتم از امام رضا خواستم رفتم شب جایی که بودم مشهد خابیدم شب خواب دیدم که وارد حرام امام رضا علیه السلام شدم وارد که شدم در زریع رو باز کردن فرمودن تو. من وارد شدم تا وارد شدم گفتم که خب اول افتادم رو قبر و قبر و بوسیدم بعد گفتم که نمیدونم تا کی اجازه میدن من داخل زریع باشم خوب از این فرصت استفاده کنم پشت قبر متحر رو به دبله گفتم وای میستم یه دو رکت نماز همینجا میخونم که این نماز با بقیه فرق داره یه مهره بسیار زیبایه قشنگ از این مهره کربلا تربت خیلی زیبایی بود مهره گرفتم بلا تشبیه این قبر متحر مثلا این قبله باشه پشت قبر من مهر گذاشتم اینجا و نیت کردم حمده خوندم سوره رو خوندم رکو رفتم اومدم برم سجده دیدم مهرم تبدیل به موز شد همینجور متحقیق نگاه کردم خدایا من مهر گذاشته بودم این چرا موزه؟ چرا مهر من تغییر کرد من میخوام سجده کنم تو همین فکر بودم از خواب پریدم خب حالا منقلش یه مرد خدایی بود به رحمت خدا رفت مرد عجیبی بود من از اون چیزهایی دیده بودم من جمله در تعبیر خواب یه آلمی داشت که برای خود من اتفاق افتاد یه خوابی دیده بودم در خواب یه ذکری گفته بودم در بیدار شدم یادم رو بیشون زنگ زدم که من دیشب یه خوابی دیدم فرمودن که این ذکر توش بود یا نه گفتم بله همین بود یادم اومد یعنی یه همچه آدمی بود خدا رحمتش به بیشون زنگ زدم صبح زود هاجاقا من دیشب نگفتم کجام چیه گفتم دیشب من یه همچ خوابی دیدم فرمودن که حالا شده 28 9 سالم بود فرمودن تو مکان زیارتی بودی دیشب کردم بله فرمود حال دعا به داد گفتم بله قف حاجت دنیایی خواستی؟ گفتم بله گفت هیف همینجور گفت قف هیف گفتم چطور؟ گفت موز میبه خوبیه ولی جای مهر نباد قرار بگیره اون حاجتت خیلی مهم بود ولی حیف اون حال بود نقدر کردید چی شد؟ موز میوه خوبیه ولی جای مهر نمیتونه قرار بگیره حاجتت مهم بود ولی حیف اون حال بود که خرج اون ها کرد. آقا دلم شکست. همون صبح راه افتادم رفتم حرمت امام رضا گفتم آقا ممنونم. گوشمو کشید دیشا. بهم دید ولی خودتون کمکمون کنید که بفهمیم چی بخوایم. اینقدر نابزرگواره. حتی اگر شما بخواید در محضرشون به صوبر مختلف بهتون آگاهی میدن، آشنایی میدن که چجوریه خب اینا رو به عنوان مقدمه بحثم که زیارت اگر دیدار است ما داریم به زیارت کیا میریم در عنوان کلی خلیفت الله خب حالا میتوانیم یک انگیزمون اول حتی از خود بریم بیرون اینا رو گفتم حالا از بریم بالاتر، از خود بریم بیرون آقا برای چی میری زیارت من نمیرم چیزی بخوام میرم فقط ارادت هم رو نشون بدم بگم شما بزرگید شما اولیای الهی هستید شما تمام رنج ها رو تحمل کردید به خاطر هدایت ما از امیر نجف بگیرید تا بید کربلا تا برید کازمه تا برید سامر را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 این همه گرفتاری و مسائب رو برای چی تعمل میکردم؟ یه گوشه میشه مشغول عبادت شو من بارها عرض کردم این فرمایش امام کازم فکر منو خیلی به خودش مشغول کرده بود تا از استادم پرسیدم برای من توضیح داد امام کازم علیه السلام و سلام وقتی که وارد زندان شدن فرمودن الحمدلله گوشه خلوتی میخواستم که خوب به عبادتم هم بپردازم یعنی مگه امام کازم بیرون از زندان به عبادت مشغول نبوده، خیلی روش فکر کردم، پرسیدم، برام توضیح دادن. فرمودن امام در خارج از زندان گاهی رسالتشون، مسئولیتشون، وظیفشون ایجاب می کند الان به جای عبادت مستحبی با یه آدم ناجنس بحث کنند. با یه آدم کزاییب صحبت کنن فلان کارو بکنن فلان کارو بکنن ولی حالا که امام بردن زندان اون تکالیف از ایشون ساقط شده حالا که ساقط شده اون کاری که با به میل خودشون به عبادته مشغول انجامه خب امام اگر برای هدایت من و شما نبود یه گوشه می به عبادتش مشغول میشد همه این مصائب رو تحمل کردن ما راه رو یاد بگیریم ما هدایت بشیم تا این پیام به ما برسونند خب اول بهتر نیست انگیزمون این باشه بگیم ما اومدیم من یکی از کارهای عربا رو خیلی دوست دارم که متاسفانه در ما ایرانی‌ها در زیارت این قسمت به خوبی زیارت عرب های شیعه نیست پای برهنه اربعین و یا های دیگه از راه دور پیاده را میافتند خسته کلافه پا تابال زده ولی وقتی میاد تو سحن امام حسین میبینه داخل حرم بره شلوق بقیه ازیت میشن یا داخل نمیره همین جلو وای میسه یا داخل میاد فقط به سرعت یه دور میزنه فقط میاد میگه لبه یا حسین میره همین لبه یا حسین حبیبی ها یعنی چشم جواب دادم یعنی شما کارتون رو کردید مامونی که وزیفمونه انجام بودید حالا من خیال میکنم باز ذریع رو به چسبم حل بدم دیگری رو کنار بزنم این رو رو عرض میکنم این لبه یا حسین چشم اون جواب دادم اومد مثلا ما اول بیایم از لجب شروع کنیم بگیم یا علی من اومدم اومدنم اول برای اینی که بگم آقا من چجوری خدا رو شک کنم که شیعی شما شدن؟ من چجوری خدا رو شک کنم که شیعه شما شده اما آقای حرف دیگه هم دارم اگه سلمان شیعه شما بود اگه عبوزر و مقداد شیعه شما بودن من با چه روی بگم شیعه شما ولی حالا میتونم خاصم رو مطرح کنم با این انگیزه آقا میشه کمکم کنید منم مثل سلمان ها بشم مراد مقداد مقداده باشه یا بهتر نیست تو اولین خواسته ها اون جنبه های بالای ارزشی رو توجه خدا رحمت کنه استاد ما رو می فرمون من وقتی هر یک از این اماکن زیارتی میرم به بزرگوارا میگم که من که قدرتشو ندارم پول گولم نزنه مقام گولم نزنه دنیا گولم نزنه تعلقات گوناگون روزمره زندگی منو از شما جدا نکنه لذا از شما میخوام یه قلاده به گردن هم بندازید سرشو خودتون نگه دارید اینو فهمیدم که اگر من در حریم شما باشم من اینو به شما عزیزان میگم که دارید مشرف میشید اگر میخواید منو دعا کنید همینجور که میگم بگید نمخوام جور دیگه بگید من بارها دوستانی که مشرف شدم بهشون گفتم گفتم اگه تو ایوان امیر و مومنین قرار گرفتید بگید یا علی اگر یه آدمی که یه مقداری سرش به تنش میارزه یه سگ پاسبانی تو خونه داره گاهی گوشتی استخوانی جلو سگ میریزه که این سگم پاسبانی خونش رو بکنه چهار تا سگ سگ اون اطراف این سگ رو ببینن میان بغلش این سابخونه یک کمی اهل بخشش رو جود باشه این سگار رو نمیزنه بره بگیه حالا که برای سگ نگهبان مدوسه تا سگ دیگم اومده ولو بلگرد یک کمی گوشت و استخون بیشتر برزید اونان بخورن از قول من به از آبان خودتون خودتون میدونید از قول من به امیر الماملین بگید یا علی من اون سگ بلگردم حس <تصفيق> سگانی که در آستان تو پاس گردن و از تو دم زدن گاهی خودمو با اونا قاطی کردن ولی کرم توی علی نمیذاره منو از اون سگا جدا کنیم ما میخواییم در حریم تو باشیم خاج نسیر توسیه با اون عظمت وقتی بغداد از دنیا میرفت بهش گفتن خاج اجازه میدی تو رو ببریم نجف دفت کنیم گفت نه از کازمین خجالت میکشم اینا هم منو پایین پای این دو امام دفت کنی رو سنگ قبرم بنویسید و کلب هم بازد زراعی املوسی سگ اصحابه کم رو سنگ قبرم بنویسید من همون سگی بودم که دم قاره ولایت اهل بیت نشستم و خواستم کسانی که به حریب بلایت علوی جسارت میکنند پاس کنم و جلو اینها رو بگیرم رضا بگیم یا علی ما میخواییم در خانه تو باشیم نذار جایی دیگه برن. ما رو ببرن دستمونو بگیرید <تصفيق> اما برای زیارت آدابی ذکر کردن کمال امام حسین علیه السلام تنها با بقیه فرق داره که اون فرقشو میگه. ولی به صورت عمومی که برای آداب زیارت گفتن گفتن خب وقتی داریم ما به دیدار کسی میریم که این مقامات براش مطرح شده با این عظمت یکیش مستحب به کردن خب اصل زیارت مستحبه بقیه همه مستحبه یکی قوصل کردن قصل زیارت مستحبه. حتی المقدور در تقضیه سعی کنید که کمتر از حد معمولی که همیشه میخورید بخورید چون شکم پر قدمه یک کمی تنبل میکنه کسل میکنه خواب بیش از حد رو بدن میطلبه. برای اینکه این, این خستگی، لختگی جسم حاصل نشه، تغذیه رو کمترش بکنید. نه تغذیه به شکلی که توان زیارت نداشته باشید. نه. تغذیه داشته باشید ولی حجمش رو کم کنید که خیلی تنبری و لختی و بیحالی حاصل نشه. دو. حتالمقدور در این سفر جز ضرورت و لازم حرف نزنید. اینو خواهش میکنم دقت کن نکته ها داره همین زبان آقا کارهایی میکنه توفیقات ما رو از ما میگیریم حتی مقدور جز موارد لازم سکوت سکوت اگه قدرت سکوت ندارید اراده قلبه بر شهوت کلام ندارید یه سنگریزه یه تمیز تهیه کنید بذارید تو درتون. تا میهید حرف بزنید نذاره یه از کاری رو مقیعت بشید این از کار رو بگید سکوت دو سه تحملتون رو بالا ببرید تنه زدن بهتون عذیتتون کردن بد برخورد کردن جای شما بود یکی دیگه اومد هولتون داد جای شما رو گرفت سندلی مال شما بود یکی دیگه اومد جای بهتر گرفت همه رو تحمل کنید به خاطر اون بزرگانی که در راستای اونا هستید چون اونا نازرن آقا اونا خوب میبینن که کیا دارن میان چجوری دارن میان بلی این معروف بعضی شعرهای ما حرفای خوبی زدن گفتاش ودا می‌کرد با یکی از اعمه گوه آقا دست خالی اومدن من ایب نیست برای که من کیم چیزی برای شما بیارم ولی دست خالی برگشتن من برای شما عیبه. به یه معنی درست دست خالی برگشتن من برای شما عیبه. شما خانواده ای نیستید که کسی از در خانه شما معیوس برگرده. اما اونا مظهر عدل و حکمت الهی‌اند. رضا هم. همه افرادی که میان و میرن دقیق همه رو زیر نظر داره. حساب شده زیر نظر داره. بر مبنای اون سیطره ملکوت برمول لذا شما به خاطر اونها سکوت کنید بعضی چیزا رو تحمل کنید حتی مقدور از در هتلی که را میفتید برید حرم سرتون رو پایین بدزید به فکر مقام اون امامی باشید که دارید میرید به سمتش ازن دخول خوندید من دو چیز رو سند از من نخواید الانم خودم دارم میگم سند نخواید ولی همینجوری ارزم کنم. بنا به جهتی من اجازه بدید واردش نشم یک اذن دخول خوندید یا یواشکی خودتون برای خودتون اگرم شرایط اجازه داد دست جمع برای حرم هر امامی روزه بخونید بد وارد بشید البته روزه هر جا هم یه حسابایی داره اگر لازم شد ارزم میکنم تو حرم امیرالمومنین المومنین دخول خوندید دم در چه روزهی بخونید تو حرم مام حسین چه روزهی بخونید این هم یه نکته هایی ازن دخول خوندید ولو تنهایید خودتون یواش برای خودتون درست فکر کنید الان در محضر امیرالمومنینید، حضرت به شما امر کردن پاش روزه بخونید روزه رو بخونید نکته بعدی ذکر نادعلی رو تنهایی یواشکی بگیرید. بنده به جهاتی عرض میکنم اعمه دوست دارند وقتی وارد بر حرمشون میشی ذکر نادعلی علی رو بگیدید بعد وارد روشید حالا زیارت رو زیارت های وارده زیارت جامعه کبیره خیلی عالیست خیلی عالیست زیارت امین الله وارد شده با زیارت و مخصوص هر امامیان که توی مفاتیح مرحوم شیخ عباس واقعا زحمت کشیده اون رو بهش توجه بفرمایید با توجه و تو خودتون باشی واقعا اگه جاتون یکی دیگه میخواد بگیره عزیز من اصرار بر این که بالا سر چنینه واسم یکی روح ال بدم و همینا شیطونه اون امیرالمومنینی که میخواد به شما عنایت کنه اگه شما دیدی جا نیست اومدی رفتی تو س یه گوشه یواشکی واستادی بهت نگاه میکنه بلا اشهد و انکه تسمه و کلام و تشهد و مغام اونا میبینن ما برای جای بندی خدا را حل میدیم اونا میبینن ما برای زدی گرفتن یه پیره پیرزن پیره را حل میدیم نکنیم این کارا رو زیارت حساب داره واقعا اگر دیدیم جمعیت اجازه نمیده حتی شد جاتون رو بدید به یکی دیگه یه دورتر اگه امام رضا یا امیر یا امام حسین میخواد انایتی بکنه فقط به خاطر اون مکان میکنه عمل بر اساس معرفته معرفت رو توجه داشته باشیم به ویژه اگر کمک به دیگران بکنیم دست دیگران رو بگیریم نگذاریم دیگران اذیت بشن ایثار کنیم بقیه رو بر خودمون مقدم کنیم حرف کم بزنیم حتی المقدور سکوت داشته باشیم حجم غذا رو و این رعایت ها رو داشته باشیم گذشت های اینجوری بعد عدیه ای که توی این اماکن مقدسه خیلی مهمه زیارت جامعه رو اگر خوندید یا زیارت دیگه بعدش دعای مکارمالاخلاق رو بخونید دعای آلیت المزامین رو بخونید که هر دوتون مفاتی اومده دعای مکارمالاخلاق دعای آلیت المزامین حتما قبل از تشرف به هر حرمی و بعد از تشرف توجه به امام عصر پیدا کنید به چه صورت قبل از تشرف توسل به امام زمان پیدا کنید به این معنی که آقا من به زیارت کسی میروم که جد شماست خلیفه خداست و امروز اون مقامی که ایشون در پیشگاه خدا داشتن رسالتش به شماست شما اجازه بدید شما کمکم کنید شما وساطت کنید که من در محظر این بزرگواران پذیرفته بشم با این توجه نسبت به امام حصر بعد از تشرف از حرم دارید مید بیرون روبه قبله واسدید یه سلام به امام زمان بدید بگید آقا متشکرم که این مقدار موفق شدم امیدوارم کمبوده ها و کاستی ها رو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 شما حرم هر امامی میرید قصد کنید لباس تمیز بپوشید خودتون رو کنید چون دارید به دیدار و یک شخصیت رو برجست میرید مؤدب منظم ظریف ز... تمیز معدتر ولی امام حسین استثناءن داره که با گرت و غباری که از راه دارید برید نمیدونم نمیدونم شاید شاید بزرگی میگفت من بر مبنای گفته اون بزرگ میگم نمیدونم شاید اولین زائر امام حسین در گودال غسلگاه حضرت زینب بود حضرت زینب با چادر نیم سوخته رفت با بدن کتک خورده رفت با سر روی خاکی رفت نمی دونم. شاید می بگیم ما هم مثل حضرت زینب و مثل زائرین اولیه کربلا می زیارت اولیه با این حال باشه اینایی که میگم دیگه مستنده با آیات و روایات و اینا نیست دیگه زوغه نسبتم نمیدم که بدعت بشه ولی بنده از بعضی بزرگان یاد گرفتم خودم این کار رو میکردم من کربلا هر سفری مشرف شدم اول میرم حرم حضرت اولفض علیه سر حضرت اولفض رو واسطه میکنن که اجازه بگیرن برم حرم امام حسین چون وزیر دربار امام حسین حضرت عبالفز حرم حضرت عبالفز اول مشرف بشی عرض عدب به ساعت مقدس غمر بنی هاشم بکنی حضرت عبالفز و واسطه قرار بدی به ازن حضرت عبالفز وارد حرم امام حسینش که الله انایت میکنن اما از نکته های دیگه‌ای که باز در همه این حرم ها مهمه و باید بهش توجه کرد یکیش قران خوندن و هدیه کردن به اون معصومین حرم هر امامی که مشرف میشید هر مقداری توان دارید توی حرم بشنید حالا تو حرم خسته شدید یا در حرم شب دارن میبندن برگشتید اومدید هتل هر مقداری که تو هتل وقت داری و اندازه ای که به سلامتیتون تون لطمه نزنه که بتونید زیارتتون رو ادامه بدید قران بخوانید و هدیه کنید به امامی که زیارتشو کردید حالا بعضیا که مقعیدن ولی حالا این زمان ها محدودشاید مشکله مثلا نجفاً یه ختم می هدیه کنن کربلان یه ختم می خون یه خط, خط. سامرا یه خط حالا ممکنه این برای عموم ممکن نباشه هر مقداری توانستید قرآن بخوانید و هدیه کنید نکته دیگر به اندازه توان مالیتون صدقه بدید به اندازه توان طبان مالیتون توانتون اجازه میده بیشتر نمیده کمتر به فکر این نباشید که اینای کلام میان جلو اینا مستحق هستن یا نیستن شما به احترام اون بزرگوارانی که به زیارتشون میرید اینایی که اطراف اون حرم میان به عشق این که زائرین این بزرگواران یه انایتی بکنن محرومشون نکنید اونام محروم نمی کنن اونام جبران بکنن به اندازه که توان دارید از نظر صدقه دادن کمک به زعفا و فقرا یادتون نره و یکی از آداب زیارت که خیلی اثر داره و میتونه مواخبی رو شامل حال آدم بکنه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 مثلا تا این حد حالا کسی توان جسمی نداره اون یه بحث دیگریه خب چون وقت داره تموم میشه من جمبندی بکنم یه دو سه نکته و دیگه اجازه بدیم ارش کردم که زیارت یک عمله هر عمل به اختزای معرفتی که پشتوانه اون عمله ارزش پیدا میکنه همونطوری که زیارت در حیات ظاهری افراد به اندازه معرفت ما نسبت به اون موارد ما رو برخوردار میکنه در بعد از مرگ هم که در واقع آزادی نفس از تعلقات ما دیست و لذا انایت و افاظه حتی بیشتر ممکنست بشود کمتر نمی شود ما این معرفت رو پیدا کنیم که داریم به دیدار یه همچون مواردی می رویم و این موارد رو اگر از دید قرآن بخوایم نگاه کنیم تعبیری قشنگ تر از مقام خلیفت الله نداریم. اینا مقام خلیفت اللهی داره. مقام خلیفت اللهی یعنی مقامی که به ازن الله همه کاری دستگاه خدا هستند همه کاری دستگاه خدا. حالا که همه کاری دستگاه خدا هستند ما وقتی داریم خدمت آنها می رسیم، اول بهتر است از لاک که خود بیرون بیاییم یه کمی بالاتر نگاه کنیم همون رابطه ای که با خدای عالم داریم شما خدا رو یه وقت عبادت می‌کنید به تمع بهشت یا از ترس جهنم یه وقت خدا رو عبادت می‌کنید به خاطر خدا خدا یه وقت زیارت رو به خاطر احترام خود عیمه بگیرید من نیومدم زیارت چیزی بخوام گرچه سرابای وجودم همش خواسته است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 این یک طرف قضیه است اگر خواستید یک کمی بحث و بالا تغییر بدید خواسته رو مطرح کنید خواسته رو از سطح بالا مطرح بکنید چه خواسته ای بخوایی؟ ما را جز شیعان واقعی خودتون قرار بدید ما را از بابستگی هایی که از در خانه شما جدا کنه نجات بدید این تعبیری که استاد ما می ای به گردن ما بندازید سرشو خودتون نگه دارید خاسته ها رو ببریم سطح بالاتر بعد واقعا جامعه بشری رو ببینیم شیعان دنیا رو ببینیم نیاز بشریت رو ببینیم نجات بشریت رو بخوایم که در رأس همه اونها برای نجات بشریت مسئله زهور امام زمان علیه السلام مطرح میشه لذا یه سلسله آداب ظاهری داریم مثل کم خوردن مثل کم حرف زدن، مثل تحمل رو بالا بردن، مثل ح مقدور خود را از بعضی با های اطراف جدا کردن که لازمشعمل تا در ضمن حرکت سر به پایین انداختن و توجهی و اطراف نداشتن که تمرکز ذهنی در این رابطه ایجاد بشه. موقع ورود هر حرمی ت به ما معسب پیدا کردن با اون بیانی که عرض کردم با اون پشتوانه معرفتی، روزه ای خوندن ولو تنهایی پیش خودتون ذکر نادعلی گرفتن اذن دخول و تشرف و زیارتی که میخونید بعدش هم دعای یا مکارم یا حلیه المظاهیم و قرآن خوندن و همچنین دعا برای عموم و اگر هم احساس میکنید نماز قضایی به عهدتونه نماز قضا انجام دادن اینا دیگه کلیات بحث اما سعی کنید وقتهایی که اون دو سه نکته ای که باز با اشاره بگم دیگه توان من بیشتر اجازه نمیده بحث رو جمع کنم سعی بفرمایید در این سفر بیشتر به فکر فرو برید این تفکر و ساعته افضل و منعوادت سب اینه سنه من عزیزانی بودن یه سفری انجام شاید بودن یا هستن از مسجد شجره که محرم شدیم پسری بود سوار اتوبوس شدیم خب خیلی یه ده دقیقه یه روبی از مسجد شجره دور شدیم خابیدن و چراغ اوتوبوس هم عملا خاموش ما دو سه نفر بودیم گفتم خالشو دارید آروم دایی جوشنکبی رو با هم زمزمه کنیم ما خیلیه دای جوشان کبیرم دعای خیلی خاصه اول بعضی‌ها معترض شدن که اگه چراغ روشن باشه ما نمیتونیم بخوابیم. با چراغ خاموش، چراغ رو داشتیم چراغ رو برداشتیم که دای جوشان کبیر دو سنفری نفری یهو شکی خیلی آروم که این صدا مانع خواب بعضی‌ها نشه. ولی گاهی اون ذکر رو که دست جمعی میخواستیم بگیم، عملا یک کمی دون صدا بالا میره، باز دیدیم بعضی‌ها معترضن. که مانع خوابه من به رفقا بخدم ما در این سفر نمیتونیم بقیه رو کنیم خب هر کدومون تنهایی بر خودمون که صدامونم از هنجرمون بیرون نیاد که افراد اذیت نشن اما با خودم بعدی کم اینجوری فکر کردم واقعا این سفری که حالا در روز پنج روز بیشتر کمتر تو سفر حج تمت تو یه ماه حالا من راجع به امبرو با مکه چیزی نگفتم فعلا در رابطه با سفر زیارتی محسومی ندهیم سلام کلا حالا عمره یه خوا... یا حج چیزای چیزهای خاص دیگه یه هم پیدا میکنم حالا کلی عرض میکنم ما یه همچون فرصتی در عمر کم برامون پیش میاد چقدر نیاز داریم از نظر جسمی این نکته هایی که ارز کردم حالا با این فرصت باقی سری بشم از نظر جسمی حالان مثلا میگن آقا ششمایی بار مراجعه کنید یه چکاب کنید یه آزمایش خونی بدهید یه سونگرافی برید ببینید چه خبره ما بیایم مگه چند بار ممکنه این توفیق دستمون بده کربلا بریم بیایم توی اتوبوس به جای حرف زدن شلوغ من گاهی وقت خدا میده از همه بیچاره تر منم ها اشتباه نشه از همه تو بیچاره تر منم اینایی که میگم خجالت میکشم ولی دلم میخواد یارو رو میزنم دلم میخواد اینجوری باشم. گاهی وقتا با خودم فکر میکنم اخه آدمی که تو اتوبوس نشستم مثلا از سر مرز ایران به طرف نجف. مگه شوخیه کجا دارم میرم؟ از نجف سوار اتوبوس شدم کجا داری میری کربلا جایی که ملائک افتخار میکنن به اونها خدا اجازه بده اونجا سیر کنن اولیای الهی آرزوشون اینه تو خطه کربلا تواف کنن خب من چیطور میتونم حرفای معمولی بزنم قه قه بخندم شلوغ کنم من نمیگم اینا حرامه ما حیف نیست چه کار کنم یا قرآن بخونید یا برید تو فکر چشمتونو ببندید کجا دارم میرم فرضو بر این بگذارید الان از نجف دارید حرکت می‌کنید برید کربلا فرضو بر این بگذارید اینجوری فکر کنید امام حسین تو کربلا خیمه زده عمر سعد و شمر و اطرافیانم دورش رو گرفتن از کوفه ایده میتونن بیان رو به امام حسین برسونن بعضیا مساهر میشن بعضیا مثل عمر سعد من الان از کوفه راه بیام برم کربلا من جز کدوم یک از این گروه میتونم باشم واقعا با شکل زندگی که من دارم نسبت به زمان خودم من جزء گروه هر حساب میشم یا جزء گروه امرسد از کجا بفهمم من حساسیتم به نماز چقدره حساسیتم به حجاب چقدره حساسیتم به غیبت و دروغ چقدره حساسیتم به حق و ناس چقدره حساسیتم به فقرا و زعفا چقدره حساسیتم به کار خیر چقدره من حساسیتم نسبت به قوبه گناه چقدره خب اینا می... اگه من واقعا یه گناه منو میلغزونه خب منی که الان از کوفه دارم میام میرم کربلا سپاه یزیدم از کوفه اومدن رفتن کربلا اینا فکر میخواد و وقت در فکر دور بر ندارم نه من که الهمدلله به نمازم حساسم به هجابم حساسم من که آدم بدی نیستم نه این بی... اینجا برگردم میگم یا امام حسیم من دارم میام ولی میام سراغ طبیب میام سراغ معلم طبیبی که هر دردی رو میتونه دوا کنه و معلمی که میتونه استعداد درونی منو دگرگون کنه من میخوام وقتی از این سفر برمیگردم شکل دیگری باشم یه تعبیری ملا صدرا داره که این تعبیر رو برای حج بعضی به کار بردن من همین رو میخواه بر به کار ببرم دیگه خاطره این جلسه انشالله ما رو هم دعا کنید و با دست پر همیگی برگردی انشالله ملا صدرها میگه که ما در این عالم سیرون من الخلق الحق داریم سیرون من الحق فلحق داریم سیرون من الحق فلخلق داریم سیرون من الخلق فلخلق بالحق داریم برخی که فلسفه عرفانی حج مطرح میکنن میگن در حج این کاملا پیداست شما از خونه و زندگی و تعلقات دست میکشید به سوی خانه خدا میشه سیرون من ال الالحق قرغ خانه خدا میشید تواف دور خانه خدا عمل حج سیرون من الحقه فلحق بر میگردید از مکه سیرون من الحقه الالخلق بعد ادامه زندگی میدی حالا که در میان مردمی سیر شما فلخلق بعد از مراجعت من الحق مثل قبل یا فرق کرده این بار سیرون من الخلق فلخلقه بله حق باید باشد خب کعبه نشان است که ره گم نشود حاج احرام دگر بند ببین یار کجاست از این دید زیارت نجف زیارت کربلا زیارت کازمین و سامر را زیارت امام رضا، که خلیفه خداست به دیدن خلیفه خدا میرید پس اینا سیرون من خلق الالحق بدانید در ایام زیارت و تشرف در اون اماکن سیرون من الحق فلحق ببینید وقتی از زیارت برمیگردید گردید سیرون من الحق علالحق ببینید ولی بعد از زیارت سیرون منال خلق فل خالده یعنی همیشه یادتون باشه شما تو حرم امام حسین با امام حسین عهد بستید تو حرم امیرالمومنین با امیرالمومنین عهد بستید اینو از خدا بخواهید خدایا تو را به حق زائرین حقیقی عتبات عالیات تو را به حق بندگان با معرفت در جوار معصومین علیهم السلام قسمت میدهید به همه ما توفیق عمل با معرفت انایت بفرما سفر همه مسافرین بی خطر بگردان سفر این عزیزانی که از جمع ما مشرف می شون. بی خطر بگردان درک معارف حقه زیارت معصومین را به همشون عنایت بفرما مشمول دعاهای خاصه امام زمانشون بگردان توفیق زیارت عتبات عالیات بعد از ظهور امام عصر در رکاب امام عصر به همه ما عنایت بفرما و سلام علیکم و رحمت